ارتباط قرار کردیم با ایشون تا در این کتاب توضیحاتی ارائه بدن. سلام عرض میکنم خدمت شما روزتون بخیر. سلام از بنده سلام خدمت شنبندگان محترم رادیو فرهنگ. تشکر می کنم آقای دکتر از فرصتی که در اختیار برنامه بوتیکا قرار دادید. همکارم آقای اسلامزادی با شما گفتگو می‌کنه. خواهش و شکر ادب. آقای دکتر ثروتیان سلام عرض می‌کنم. سلام از بلخسته باش. سلامت باشید. جناب آقای دکتر اولین سوالی که همیشه در مورد شرح جدید غزلیات و حافظ پیش میاد اینه که چه لودومی احساس میشه بعد از این شهرهایی که بر حافظ بوده دوباره ما شرح جدیدی رو ببینیم؟ بله عرض کنم خدمتون من تقریبا کار حافظ از سال تقریبا 1115 که مسئولیت این دانشگاه دانشکار با من بوده مشغول تحقیه حافظ بودم از روی نسخه های مختلف تا یه نسخه علمی از روی استادان دانشگاه تفریز و از روی سه نسخه خطی خود ما در اونزا کردی. کردیم و من متوجه شدم که نسخه غزبینی و خلق که در دسترس همه ملت ایران هست اغلب سهبها و خطاهای داری که بعدا میدونید در شهست دو کتاب علمی انتقادی زندیاد در خاندری صاف شد که از روی ساهادن و خطی خطی ممتاز در جهان که مربوط به سی سال زمان حافظ صاف شد و من مشغول شدم در حدود پیش سال می شود گفت زمه کشیدم، هیچ یک کتاب حافظی برنامه غزلیات حافظ مشکول نوشتم یعنی بازی رو زبر. و اینشارات نگاه تاک بعد از این بود که متوجه شدم یک از شرحه هایی که تا حالا نوشته شده به بسیاری از موضوعات حافظ پی بردند از این راحت تصمیم گرفتم در مدت تقریبا سه سال زحمت کشیدم و برای تحصیح حافظ دیس سال در مدت سه سال یک چیک کلمات را توضیح دادم مدت منطق یک بار این سهار زیدی در سهار هزار صفحه صاف شده بود که تعبیرات و توضیحات بسیار داشت انتشارات نگاه پیشنهاد کردن که انتشار خلازه تر بشه و کتا تر بشه ارزان تر به دست مردم برسد تا اخیران خوشفتانه تو سه روز پیش منتشر شد چهار تل.